دل سرا پرده محبت اوست دیده آیندار تلعته اوست من که سردرنه آورم به دکان گردنم زیر بار مننت اوست تو و توبی و ما و قامت یار فکر هر کس به قدر حمت او اگر من آلود دامنم چه عجب همه عالم گواه اسمت اوست من که باشم دران حرم که سبا پرددار حریم حرمت اوست من که باشم دران حرم که سبا پرددار حریم حرمت او بی خیالش مباد منظر چشم زان که این گوشه جای خلوت اوست هر گل نو که شد چمن آرای زسر رنگ و بوی صحبت اوست دور مجنون گذشت و نوبت ماست هر کسی پنج روز نوبت او ملکت آشقی و گنج ترب هرچه دارم زیوم نهمت اوست من و دلگر فدا شدیم چه باک غرزن در میان سلامت اوست فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت او